ساموئل جانسون میگوید پروراندن لحظه زرین فرصت ها و به چنگاوردن امر خیری که در دسترس ماست هنر بزرگ زندگی است. آب چهار تماشای جریان ایده ها. نگریستن به پشت سر و پیش رو لامپ روشن استعاره بصری ایده اصیل و درخشان است اما جزی از استعاره نادرست است یعنی روشنی لام در خلا اتفاق می افتد. اما ایدهها هرگز در خلا زاده نمی شوند ایده های نوع امروز بر مبنای ایده های دیروز ساخته می شوند و مسیر ایده های درخشان فردا را هموار می کنند نوآوران مخترعانی چون الکساندر گراهام هنرمندانی چون گلادمنه، دانشمندانی چون چارلز داروین، نویسندگانی چون جی رولینگ و پیشگامان کسب و کاری چون استیو جابز فهمیدند که هر ایده نو ادامه راهی است که در گذشته آغاز شده و از حال به آینده می روند. آموزندگان و نوآوران موفق و مؤثر قدرت جریان ایدهها را مهار می کنند و این جنبه یادآور عنصر آب است همواره جنبه دیگری وجود دارد هر پیشرفتی می تواند سکوی پرتاب پیشرفت های بزرگتر آینده باشد رایانه اپل که در دهه 1970 در یک گاراژ ساخته شد به وضعیت کنونی خود متحول شده است و به زودی به نحو تشخیص ناپذیری از این نیز پیشرفته تر خواهد شد راه حل مسائل کوچک راه حل مسائل بزرگ را خلق میکند زدودن تاریخ آیا تا به حال در کلاسی به کلی سردرگم شده یا ایده ی عمیقی را در کتاب خوانده و با خود اندیشیده اید که چگونه کسی به این مضمون دست یافته است سوال خوبی است متاسفانه سرچشمه ایده ها غالبا پنهان است و به جای اندیشیدن به تحول فضاینده که توصیفی دقیق تر است حس آفرینش جادویی و خودانگیخته را به ما میدهد. هر ایده بزرگ، ایده انسانی و حاصل کوشش صدها و شاید هزاران نفر در منابخشیدن و فهم موضوع است اندیشمندان مرزهای دانش ما را جزء به جزء پیش میبرند. هر گام سرگردان، هر گام اشتباه و هر بنبست است اغلب با استفاده از اجزای تفکر که در فصلهای گذشته به آنها اشاره شد، فهم عمیق، شکست و سوال کردن بینش تازه ای فراهم می‌کند که ذهن‌های مبارز جو را در مسیر کشف‌ها پیش میراند روش برانگیختن تفکر مؤثر. ایده‌ها را تکرار کنید. برای پرداختن به یک مسئله به ارتش هزار نفره نیاز ندارید. تنها کسی که باید جزء به جزء به جلو پیش برود، شما اید. تحول خود را مهندسی کنید. به سراغ تکلیف، مقاله یا پروژه بروید و آن را به سرعت انجام دهید. گنی سر وقت سؤالات بروید، پیش نویس مقاله را بنویسید یا با حد اکثر سرعت ممکن پروژه را به جلو ببرید که در بهترین حالت کمتر از حد قابل قبول است. اکنون، تلاش ضعیف خود را به منزله نقطه آغاز کار در نظر بگیرید. به کار خود واکنش نشان دهید و به اصلاح و تکرار آن مبادرت ورزید جریان تکرار به محصول نهایی پیراسته منتهی می شود. توجه کنید چگونه جریان ذهنیت به طور کامل با اجزای شکست که پیش از این معرفی شد هماهنگ می شود. مثال بازنویسی به روش ارنست مقاله با عنوان هنر رمان در پاریس ریویو به سال 1956 شامل مصاحبه با ارنست همینگوی است در مصاحبه همینگوی شخصی معرفی می‌شود که روش پیشرفت رشد‌یابنده را تمرین می‌کند مصاحبهگر چقدر کارتان را بازنویسی می‌کنید همینگوی بستگی داره صفحه آخر رمان ودا با اسلحه را 39 بار بازنویسی کردم تا راضی شدم مصاحبهگر: آیا در آن صفحه با مشکل فنی مواجه بودید؟ چه عاملی شما را به سطوح آورده بود؟ همینگوی: استفاده درست از کلمات. برای فهم ایده‌های فعلی از طریق جریان، ابتدا اجزای ساده‌تر را بیابید که به مطالب فهمیدنی نهایی متعیم شود و سپس از اجزای ساده‌تر به ایده‌های پل بزنید که قرار است بر آنها مسلط شوید. برای تولید ایده نو از طریق جریان، ابتدا ایده فعلی را در زمینه خود اصلاح کرده و سپس آن را در موقعیت متفاوت به کار ببرید. پس از آن میتوانید مسادیق، اصلاحات و تغییرات را تولید کنید. فهم ایده های فعلی از طریق جریان ایده ها برای فهم درست یک ایده نحوه تحول طبیعی آن را از اندیشه های شناسایی کنید تشخیص این نکته که واقعیت موجود لحظه ای از یک تحول مداوم است موجب بیشود فهم شما با ساختار منسجم‌تر تر منطبق شود گذر از حسابان کل تاریخ ریاضیات، توالی بلند اخص بهترین ایده ها و یافتن مسادیق انواع و های نو است. زندگی امروز ما با زندگی مردم 300 سال گذشته به کلی متفاوت است و دلیل اصلی آن نوآوریهای علمی و فناوری بر پایه بینش های ناشی از حسابان بوده است. ایزاک نیوتن و گوتفرید فون لایپنیتز در نیمه دوم قرن هفدهم مستقل از هم حسابان را کشف کردند. اما با مطالعه تاریخ میفهمیم که ریاضیدانان پیش از ورود نیوتون و لایبنیتس به میدان به تمام اجزای اصلی حسابان اندیشیده بودند نیوتون به این واقعیت اقرار کرده و نوشته بود اگر بیش از دیگران دور دست‌ها را دیدم به این دلیل است که بر شانه قول‌ها ایستادم نیوتون و لایبنیتس همزمان به بینش درخشان خود دست یافتند زیرا کارشان جهشی عظیم از یافته‌های قبل نبود افراد خلاق حتی کسانی که نابغه تلقی میشوند کار خود را در مقام افراد غیر نابغه آغاز می کنند و با گامهای کودکانه پیش میروند. روند حسابان به راستی دنیا را تغییر داد اما نه در روز کشف خود در سیصد سال گذشته از حسابان در مکانیک حرکت سیارات الکتریسیته و مغناطیس جریان سیالات زیست شناسی اقتصاد و حوزه‌های بیشمار دیگر استفاده شده است. چه بسا حسابان صاحب رکورد جهانی دامنه نفوذ یک ایده باشد. لایپنتس اولین مقاله درباره حسابان را تنها در 6 صفحه در سال 1684 منتشر کرد. نیوتن و لایپنتس به یقین از دانستن اینکه که کتاب درسی مقدماتی حسابان امروز شامل بیش از 1300 صفحه است تعجب می‌کردند. کتاب درسی حسابان دو ایده بنیادی را معرفی می کند و 1294 صفحه باقی مانده شامل مثال ها، مسادیق و کاربردهاست هاست. همه آنها از پیگیری پیامت آن دو ایده بنیادی ناشی می شوند. دانش آموزان چه بسا تعجب کنند که معلمان تمام 1300 صفحه آن کتاب قطور مملو از نمادهای گیش کننده را می‌دانند. اما معلمان در واقع به 1300 صفحه مستقل شامل واقعیت متمایز مسلط نیستند. معلمان مطلب را به شکل متفاوتی می‌بینند. آنها معنای ایده های بنیادی را می‌دانند و از نحوه تبدیل ایده‌ای به ایده دیگر آگاهند. دانش که از دیدگاه فوق رونوش بر می هر موضوع را بهتر از دانش آموزانی میفهمند که هر هفته را کوه روشن فکرانه تازهی برای سعود تلقی می انگام یادگیری یک مطلب از خود بپرسید کدام دانش قبلی و راهبرد برده بست ایده های سابق می تواند ایده را به مصداق واضح، ملموس و طبیعی تبدیل کند. هر مطلبی سفر مداوم کشف و پیشرفت است، نه فهرستی از مباحث جدا، بلکه جریانی از ایده ها که در پی هم ساخته می شوند. هنگام مشاهده و فهم ارتباط ایده ها با هم، آن ایدهها ها جالبتر، به یاد تر و معنادارتر می شوند. به یاد داشته باشید، اگر نمیتوانید در امتحان نهایی، واقعی یا مجازی، بالاترین نمره را بگیرید، بنابراین برای آزمون بعد آماده نیستید. روش برانگیختن تفکر مؤثر به گذشته برگردید هنگام مواجهه با مسئله، خواه در مطالعه یا تصمیم گیری درباره مسیر آینده، به این فکر کنید که مسئله قبلا چگونه بوده است. فکر کنید مسئله چگونه در برابر شما قرار گرفته است. به بپرسید دیروز، ماه قبل، سال پیش و سالهای گذشته کجا و چگونه بوده است. هر چیز و هر کس متحول می شود؟ اقرار به این واقعیت به شما امکان خلق بینش‌های نو و گام برداشتن در مسیرهای پربار را می‌دهد. مثال: نگارش داستان قبل. جان خواندن رومانی را به پایان رسانده بود و به آن فکر می‌کرد. داستان در زمان جنگ سرد رخ داده بود. او تصمیم گرفت درباره اتفاقات پیش از آغاز جنگ سرد بیشتر بداند. یعنی پیش از زمانی که داستان روی صفحات کتاب بیاید شخصیت ها کجا بودند؟ ماجرای آنها چه بوده است؟ افراد چگونه به شخصیت های جان گرفته در آن صفحات تبدیل شدند؟ جوابها به او در توجیه پویایی خاص داستان کمک کرد و به او امکان داد کنش‌ها و ماجراها را بهتر بفهمد. البته سؤال کلیشه ایه بعدن چه اتفاقی میافتد یا به عبارت دیگر پس از انتهای داستان چه اتفاقاتی رخ می دهد مسئله طبیعی و تفکر برانگیز دیگر است موضوع بعد را حدس بزنید برای فهم بهتر مطلب پس از آشنایی با مفهوم نو به فراسوی آن بنگرید و صرفاً آن آنچه به گمان شما مطلب بعدی خواهد بود را حدس بزنید برای مثال در متن یا سخنرانی یا هر اجرای دیگر حتی اگر حدس شما درست نباشد باز اهمیت دارد خطا کردن به تشخیص بهتر موضوع درست یاری می‌رساند و درباره نحوه انطباق ایده‌ها با یکدیگر بینش‌هایی می‌دهد چند سال پیش من برگر با چند دانشجوی لیسانس که حوزه اصلی علاقه آنها ریاضیات بود در کلاس تاریخ هنر شرکت کردم ما یادداشت بر نمی‌داشتیم و برنامه درسی دوره را نداشتیم هر روز هنگام پیاده روی تا کلاس درس عادت داشتیم بر مبنای آنچه از کلاس قبل یادمان بود موضوع درس آن روز را حدس بزنیم این مباحث شیوهی مناسب برای معنا دادن و به خاطر سپردن مطالب کلاس بود با استفاده از آنها به شکل متفکرانه موضوع بحث کلاس را جلوتر بازبینی می کردیم و آگاهانه چارچوب پیش ایده های هنرمندانه را می و موضوع را به جای مجموعی از دوره های هنری مجزا و بی ربط در کلیت آن ملاحظه می کردیم. حتی ما حتی اگر کاملا اشتباه بود به ما نگرشی عمیق درباره مطالب قبل می داد. زیرا با استفاده از آنها به این نکته فکر می کردیم که مطالب قبل در میانه جریان پیشرفت و نه در انزوا چگونه است. یادگیری از حدس های اشتباه امکان مشاهده تفاوت بین انتظارات و واقعیتها را به ما می دهد و به این وسیله ذهنیت ما در مورد مسائل تغییر می کند. کل موضوع به شبکه به هم پیوسته ایده ها تبدیل می شود. در خاتمه اضافه کنم که نه تنها با اتکاب این گفتگوها در مسیر کلاس درس و گوش دادن فعالانه به درسها بدون خواندن کتاب درسی، یادداشت برداری یا حتی شرکت در سمینار هفتگی واقعا در آزمونها قبول شدیم. نگاه به گذشته موضوع قبلی را آسانتر می کند. به محض یادگیری مطالب پیشرفته به گذشته بنگرید و ببینید چه اواملی شما را به مرحله فعلی هدایت کرده است. فرایند فهم شما را نسبت به کار قبل و کار پیشرفتتر فعلی ارتقا می دهد. مطلب قبل آسانتر، واضحتر و معنادارتر می شود زیرا از طریق کار بعدی ناشی از آن به اهمیت آن پی می برید. کار پیشرفته تر نیز به این دلیل ساده تر است که اکنون می دانید چگونه از بعضهای نهفته در کار قبلی رشد کرده است. دیدیم که افراد موفق به طور منظم این تمرین انعکاسی را انجام می دهند. چالش تونی پلاگ استاد نوازندگی ترومپت را در نواختن قطعهی ساده و به نقم درآوردن آن به یاد بیاورید. <تصفيق> یک گام کوچک یکی از واقعیت های بزرگ دلگرم کننده درباره اندیشه بشر این است که ایده های تازه ما در واقع تنها نوع دیگری از اندیشه های قبلی است. اگر به تاریخ اختراعات یا تحول ایدهها بنگریم، شاید چنین به نظر بیاید که لحظات الهام بخش که به مسیرهای کاملا نومنتقی می شود وجود دارند. اما چونان که در مورد سرآغاز حسابان دیدیم اساساً هر ایده مهم درخشان را میتوان به آسانی به فهم صاحب ایده از دانسته های قبلی و برداشتن گام کوچکی برای افشای ایده بعدی نسبت داد نوع دیگری از فهم عمیق موضوعات ساده تفاوت افراد صاحب بینش بزرگ با افراد فاقد بینش بزرگ این است که گروه اول واقعا گام های کودکانه را برمیدارند. عمل کرده آن دست از دانش آموزان صاحب این ذهنیت که ایده های بهتر عملا در دسترس آنهاست و یک گام کوچک دیگر مرا به آنجا میرساند از کسانی که به گمان خود تنها ذهن های بزرگ پیشرفتهای بزرگ می کنند بهتر است. برداشتن گام های کوچک می در هر کار از نوشتن مقالات و انجام دادن آزمایشها در آزمایشگاه تا برپایی موج بعدی اینترنت پیامت های عظیم داشته باشد هنر توالی دوره های هنری در طول قرنها نشانه تصویر شورانگیز تحول هنجارهای زیبا به منزله واکنش به وضعیت هنری موجود است. جنبش امپرسیونیسم چند گام از هنر بازنمودی مقدم بر آن فاصله داشت. این جنبش از دیدگاه رایج که نقاشی باید شبیه عکس باشد جدا شد. نقاشان امپرسیونیسم با تسلط بر روش‌های سبخناختی تثبیت شده جدید می‌خواستند با خلق جوهر صحنه بدون نمایش تصویر واضح آن گام دیگری بردارند و به این ترتیب تماشاگر را به درگیری فعال و تفسیر آثار هنری دعوت کنند ما امروزه به این پردهها به منزله شاهکار می‌نگریم اما زمانی که اولین بار در نمایشگاه‌های فرانسه به نمایش درآمدند عموم مردم را حراسان و در واقع آزرده کردند. تماشاگران به نحوه تعبیر سبک انقلابی آگاه نبودند و تنها پنبه اثر هنری را زدند در واقع یکی از آنها در نقد گزنده نوشته بود این آثار حتی هنر هم نیست بلکه دریافتهایی از تصاویر به نمایش درآمده است آنچه در آن زمان افترای آزارنده به حساب می آمد اکنون نماینده یکی از مهمترین دوره های هنری است هنگام تفکر درباره آینده باید از این واقعیت آگاه باشیم که تجربه‌های تازه‌ای که امروز به نظر ما عجیب است برای نسل بعد آشنا، طبیعی و حتی شاید زیبا جلوه کند و شاید در آینده به نظر ما نیز چنین باشد یکی از چالش‌های زندگی این است که در مورد ایده‌های نو و امکانات تازه با دید باز برخورد کنیم هزیرش امپرسیونیسم در آن زمان که رسالت هنر بازنمایی جلوه واقعی جهان بود، دشوار بود. هر یک از ما چالش تعبیر امپرسیونیسم زمانه خود را به منزله دریچه معتبر، جذاب و مهم به روی جهان فردا پیش رو دارد.